سلام علی سخاوتی هستم با اولین برنامه پادکست 822 822 اسم این پادکست و شماری آپارتمانیه که ما درش زندگی کنیم. توی این پادکست فقط برای من حرف بزنم شما اگر حرفی برای گفتن دارید که میخوای توی این پادکست گفته بشه یا مطرح بشه میتونید به آدرس ایمیل 822.aliesخاوتی.com ایمیل بفرستید یا به وبلاگ من با آدرس alisekhavati.com مراجعه کنید و زیر مطالبی که این پادکست درش منتشر میشه کامنت بذارید. ایده پادکست از یه شب مهمونی به ذهن من رسید که دوست داشتم در اون مهمونی بیشتر صحبت بکنم ولی شرایط زمان محدود مهمونی و بالاخره ادب و احترام به آدمایی که اونجا بودن ک می کرد که خودم کنترل بکنم سخته که آدم بفهمه واقعا چقدر باید توی مهمونی که 5 6 نفر دیگه هم هستن صحبت بکنه. زبان بدترشون رو نگاه بکنی یا اینکه بالاخره یه نفر که خود بیشتری داره و بیشتر سعی میکنه که نسبت به بقیه صحبت بکنه تسلیمش بشی به اجازه بیم اون زمان رو استفاده بکنه و صحبت بکنه، موضوعاتی که علاقه مند فکر میکنی بهش نیستی و یا خسته کننده است مثل تأثیر ریاست جمهوری ترامپ به منافع ملی ایرانیا ها رو قط بکنی و سعی کنی موضوعات جذابتری پیدا بکنی همه اینا چیزهاییه که به خصوص اگر یه نفر یکم برخلاف من حوش اجتماعی داشته باشه و بدونه که چجوری توی جمع حرف بزنه که دیگران از اون بدشون نیاد باعث میشه که آدم خیلی خودسانسوری بکنه توی مهمونی و صحبت نکنه و اصولا داشتن یه فضایی که آدم هر چقدر دلش میخواد صحبت بکنه به نظر من یه،, یه فضایی خیلی ضروریه که باعث آرامش انسان میشه توصیح میکنم شما برای خود یه پادکست درست کنید و بدون وقفه و بدون اینکه کسی زمان رو از شما بگیره درش صحبت بکنید البته حرف زدن توی یه اتاق تنهایی کار خیلی آسونی هم نیست این بار فکر میکنم ششم و هفتمه که من همین قسمت رو دارم زبط میکنم یه حس عجیب قریبی داره و آدم واقعا گیج میشه که در مورد چی واقعا باید صحبت بکنه قبل از این که شروع کنی به ضبط در طول روز هزاران موضوع هست توی ذهنت میاد که فکر میکنی ساعتها میتونی. در موردشون با یه نفر صحبت بکنی ولی وقتی که شروع میکنی به زبط کردن صدای خودت اونم توی اتاقی که تنها هستی و کسی, کسی مخاطبت نیست و تو مخاطب کسی نیستی یه ذره شرایط فر میکنه امیدوارم تو برنامه بعدی ذره این،, این،, این حس بهتر بشه در هر صورت فرصت شما با فرصت من در این پادکست برابر نیست فرصت شما تقریباً برای حرف زدن سفره و فرصت من برای حرف زدن نامحدود همونجوری که فرصت من در این که شما به این پادکست گوش بدید و به چیزهای دیگهی که روی کانال های تلگرام یا روی اینترنت یا به شکل پادکست یا به هر شکل دیگهی دریافت می کنید به اونا گوش ندید برای به اونا توجه نکنید من به خصوص در شروع حدث می زنم که فرصت بسیار نابرابری برای جلب توجه شما داشته باشم ولی مهم نیست مهم, نیست. مهم نیست که من فعلا فرصت حرف دارم و همین کافیه فرصت هم از این موضوع اصلا اینجا اومد که توی اون مهمونی یکی از خانم ها مطرح کرد که خانم ها در جامعه ما فرصت برابر ندارن نسبت به آقای من،, من،, من که توضیح خواستم و چند, چند تا سوال پرسیدم مشخص شد که با وجود این نظریه همه معتقدن که دندان پزشگاه مرد بهترن کارشون رو بهتر بلدن وکلای مرد همینطور حتی راننده های مرد یعنی این،, این شایه که حتی خود خانمان راندگی خانمان رو قبول ندارن و من فهمیدم اونجا که دلیل این بوده که به اندازه کافی فرصت های برابر داده نشده یعنی این اصلا مربوط به جنسیت نیست. این از اگر شما معتقدیم که یک رانندگی مرد بهتر رانندگی میکنه، لزوممن به این معنی نیست که شما تبعیض جنسی قائل میشین و معتقدیم که اصولا جنس مذاکر، قابلیت این رو داره که راندگی بهتر یاد بگیره در و وکالت یا یادشه میدونم مهندسی سازه هم همینطور خب حالا اینجوریه پس فرصت برابر دادن یعنی چی واقعا یعنی که شما به هزینه یک عدهی فرصت تمرین کردن دیگه ای رو فراهم بکنین مثلا ما شنبه داشتیم میرفتیم شما مازندران عروسی دوت بودیم و سی 40 کلومتری فیروسگو با یه ترافیک خیلی سنگین و متوقفی روبرو شدیم که تکون نمیخورد و بعد از یک ساعت یک ساعت و نیم که خب هوا هم دار سرد میشد تاریک میشد و برف و کوران خیلی شدیدی بود ما تصمیم گرفتیم برگردیم بعضی که برگشتیم شبش و روزه بعد فهمیدیم که خب خیلی شرایط بدی بوده کسایی که توی گردنه یخزده بودن و زنجیر چرخ نداشتن راه دیگران رو که شاید زنجیر چرخ داشتن مستود کرده بودن و هزاران هزار ماشین اونجا گیر افتادند که مجبور شدن سرنشینانشون رو تخلیه بکنن تا روز بعد بتونن اینا رانندگی بکنن به مسیرشون ادامه حالا نمیشه گفت که راهنمایی رانندگی یا اداره راهها به همه ها به همه راننده ها فرصت برابر داده که از یه شرایط سختی عبور بکنن صرف نظر از اینکه زنجیر چرخ دارن ندارن رانندگیشون خوبه نیست میتونن از اون هوا عبور بکنن آمادگی اصلا جسمی و ذهنی لازم رو برای مواجهه با سختی‌ها و بلایای طبیعی دارن یا خیر به نظر میاد که جواب این سوال مثبته یعنی واقعاً آره میشه گفتش که به همه فرصت برابر داده شده ولی این فرصت برابر دادن در عمل منجر شد به اینکه یه ده زیادی اه پشت اه ترافیک بمونن و تو برف و سرما مجبور که ماشینشون رو رها بکنن و برن در مکانهای اسکان عمومی شب بمونن ما دور زدیم ما, ما همونجا دور زدیم و توی اون دور زدن ماشینمون گیر کرد چون مام زنجیر چرخ نداشتیم و ما اونجزه کسایی بودیم که به نابرابری به همون فرصت برابر داده شده بود ولی خب شانس آوردیم یه آقایی که مسلط بود به رانندگی روی برف به کمکمون اومد و نشست جای من و من شروع کم به هل دادن ماشین و این بالاخره یه جوری با دنده دو بدون گاز من, من نمیدام چجوری میشه ماشین رو زد توی دنده دو و گاز زنداد ولی اون توصیحی بود که اون میگفت و من نتونستم عمل کنم اون زد دنده دو و گاز نداد ولی خب ماشین بعد از چندین بار سری و خطا حرکت کرد و بعدم که ازش تشکر کردیم و رفت و ما به مسیر ادامه دادیم خانومم میگفت که توی ماشین خیلی داشته میگفت که نگران نباشید اصلا نگران نباشید من شما رو اینجا میبرم بیرون من بود و آقاتون نگرانشید که من شما رو بدازدم اصلا یه همشین نگرانی نداشته باشین خواهیست همه جور وجود داره دیگه در هر صورت ما برگشتیم و این فرصت برابری که بهمون داده شده بود رو از وسط راه رها کردیم با این تفاصیل من فکر میکنم که اجازه بدین نه من فرصت برابر داشته باشم در جلب توجه شما در خوز اولاتی که روی اینترنت گوش میدین و نه شما فرصت برابر داشته باشین در تولید این پادکست این, این, این شاید مقدمی باشه بلی اینکه که من میخوام در مورد زندگی شخصیم که عمدتا در همین آپارتمان شماری 822 اتفاق میافته اینجا صحبت بکنم صرفا به, که به دلیل این که دوست ندارم کسی حرفم مقدم بکنه زمان صحبت کردن رو با من شی بکنه یا اینکه راجع به موضوعی صحبت بکنه که من خیلی بهش علاقه ندارم مثل مثلا این موضوع ترامپ واقعا واقعا دیگه ذره حال به هم زن داره میشه که یک یه نفری در یک کشوری که هزاران کیلومتر با ما فاصله داره رئیس جمهور شده و ما اینقدر در موردش صحبت می‌کنیم و در مورد نقشش توی زندگی خودمون فکر می‌کنیم به هر صورت یه سیستمی درست غلط بوده مردم در اون رگگیری شرکت کردن یه نفر برای چند سال رئیس جمهور یه کاری میتونه بکنه یه کاری نمی‌تونه بکنه بعد یه کاری که میکنه رو یه د نمیاد مثل مثل همه کشورها و مثل همه های حکومتی و این اصلا موضوع جذابی برای من نیست اگر برای شما موضوع جذابیه میتونید توی پادکست خودتون یا مهمونی که دارید در موردش تا دلتون میخواد صحبت بکنید در هر صورت فرصت های برابر، فرصت های نابرابر، برابری فرصت ها، نابرابری فرصت های اینا همه یکم هم بحث های فلسفی که من به خودم قول دادم توی این پاکست ازش پرهیز بکنم می‌خوام راجع به موضوعات ساده‌تر صحبت بکنم مثلا دیروز یه نفر از اداره مالیات زنگ زد و گفت که فردا ساعت 9 یعنی امروز ساعت 9 صبح بیاین اداره مالیات اه فلانجا اه در مورد بررسی مالیات یه شرکتی که من 10 سال پیش به سطر رسوندم مالیات سال 1394ش من امروز رفتم اونجا یه آقایی بود و صحبت کرد و گفتم که ما گفت... گفت عدم فعالیت زدید گفتم بله ما عدم فعالیت اعلام کردیم گفت چرا؟ گفتم چون ما گفتم به دلیل عدم فعالیت و خندید به نظر من خیلی جالبه که آدم بتونه یه, م... یه ممیز مالیات رو ساعت نه صبح بخندونه و این خنده معنیش این بود بعدم فهمیدم که جواب من کافی نبوده و میخواست بدونه که چرا ما عدم فعالیت اعلام کردیم دلیل من این بود که به دلیل شکست در فعالیت های تجاری و عدم جذب مشتری و به یک معنی نداشتن کسب و کار در هر صورتیشون بدون اینکه سوالهای زیادی بپرسه در ناباوری من یه کاغذ به من داد که بنویسم ما فعالیت نمی کنیم و به من این امیدواری رو داد که برای همیشه از شر ریداری مالیات خلاص بشه البته یه سری مدرک رو من هفته دیگه باید دوباره براش ببرم از یه طرف هم فکر کنم که حرف من رو باور نکرد و دنبال شواهد و قرائن میگرده که ثابت کان من در میگم واقعا اگه فرصت های برابر توی کسب و کار وجود داشت شاید شرکت ما ورشکست نمی شد و ما مجبور نبودیم که عدم فعالیت اعلام بکنیم حالا یا به دلیل اینکه مردم کالا و خدمات ایرانی به اندازی کافی نمی یا به دلیل اینکه چیزهایی رو که دیگران تولید می کنند و اونا لازم ندارن رو نمی به نظر من دولت باید بیشتر حمایت بکنه که مردم چیزایی رو که واقعا نیاز ندارن بخرن تا به اونایی که چیزایی رو که مردم نیاز ندارن تولید میکنن فرصت های برابر داده بشه متاسفانه به خیلی از جمله خود من که چیزایی به درد نخور برای مردم تولید میکنه حالا به درد نخور به معنای می میکلمه یعنی در صورت چیزی شما درست کردی که مخاطب نداره با حمایت از آدمایی مثل من و دادن فرصت‌های برابر این،, این شانس به وجود میاد که در آینده طولانی مدت ما شاهد شکوفایی اقتصادی باشیم و به حال این آدمایی که در کوتاه مدت یا میان مدت فرشکست میشن و دچار شکست اقتصادی شاید این پتانسیل داشته باشن که بتونن در یه بازه 100 ساله یا حتی طولانی‌تر تاسییل و توانمندی‌های اقتصادی و نوآوری خودشون رو به بازار حداقل ملی ثابت ووق نه من واقعا به این حرفایی که زدم باور ندارم بازار خودش نشون میده بازار خودش نشون میده که چی میخواد چی رو می می و متاسفانه خوشبختانه تو این بازار هیچ فرصتی برابر نیست کاملا. ولی چیزی که هست به شکل برابری برای همه نابرابری یعنی خیلی سخته گفتش که در این نابرابری هم نابرابری وجود داره به نظر میاد که به یک برابری درش هست که حالا این باز دوباره بحث فلطفی شد نمیدونم شما چی فکر میکنیم؟ در چه زمینی به شما فرصت های برابر داده نشده؟ من فکر که فرصت های برابری نسبت به بازیگر معروف تلویزیون یا سینما به من داده شده بود منان یک هنرپیشه می بودم. منظورم از این فرصت برابر یعنی که توی سن خیلی کمی یک کارگردان صدادایی من رو شناسایی می کرد و سرمایهگذاری زیادی برای بازی من توی دو سه تا فیلم می حتی اگر گم می زدم. و، چندین چندین هنر پیش شخصیت سینمایی تلویزیونی در مورد استعداد من صحبت می تو برنامهاشون و این فرصت رو به من میدادن که در کنار اونا نقش همعرضی داشته باشم و تحت تحت شعاع معروفیت و بازی خوب اونا بتونم خودم رو بکشم بالا یه همشین فرصت های برابری واقعا به من داده نشد من فکر کنم شما از نداشتن همچین فرصت های برابری خیلی وقتی تو زندگیتون رنج کشیدیم این صدای زنگ در بود که خانومم به صدا در برد کلیداشو جا گذاشته بعد از اینکه درم باز کردم برای فاصله سری چیزایی برداشت و رفت با مادرش میخواست بره بازار خرید همینقدر کافیه برای برنامه اول برای برنامه بعدی امیدوارم بازم به من فرصت کافی بدید دوشنبه هفته بعد تا دوشنبه هفته بعد اگر چیزی خواستید بگید در این پادکست به آدرس 8222.com بفرستید تا دوشنبه هفته بعد خدا نگهدار